گر من از سرزنش مدعیان اندیشم شیوه مستی و رندی نرود از پیشم زهد رندان نواموخت راهی به دهی من که بدنام جهانم چه سلاف اندیشم شاه شورید سران خان من بی سامان را زن که در کمخردی از همه آلم بیشم بر جبین نقش کن از خون دل من خالی تا بدانند که قربان تو کافر کیشم اعتقادی به نما و بگذر بهر خدا تا در این خرقه ندانی که چه نادر بیشم شعر خونبار من ای باد به دانیار رسان که مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم من اگر بعد خورم ورنه چه کارم باکست حافظ راز خود و عارف وقت خیشم